هم از 3 نهم از سوال استاد جعفری. یا یلا ای خوای یماله به مفهوم هست ای قا به که این تقسیم و تفاوت آیا منطقیه یا منطقی نه ای را دیدی منطقی است یعنی در تاریخی در مقایسه موضوعی است به خاطر هر قسمی عریبه وقتی تمام اقسام تاریخی باشه تقسیم قبل دو اسم تعلیمی و موضوعی یک تقسیم منطقی حساب نمیشه برابر یک تقسیم تعلیمی بر موام تعلیم برای اینکه بعضی در احرام آسایی ها مشخص بشه اومدن اینطوری تقسیمش گردن و اینکه هر قطعی ای تعلیمی کما اینکه هر قطعی ای موضوعی صفتیه یعنی شما یک کنید بگیر قطعی که انسان پیدا میکنه یک صفت نفسانه نیست قرط استفاد نفسانی نمید پس هر قرطی سفردی هر دقی طریقی و با این تداخل صد در سر چطور میشه ما قاعده به تقابل باشیم چجور قاعده به تقابل میشیم این تقابل منطقی نمیشنه باشه واقعیت نداره در مقام تعلیم برا تردیل ورزید آسان؟ آثارشو میخوام بدون و حکامشو میخوانی بدون به اندامی شد اثنی از قطع تاریخی نیارم هر قطع ایچه انسان بیران میکنه این طریق رو مفضوعشه بحثی در اثنی چوکهی نداره اثنی از اون نیارم مثلا بعدی هم بگم بعضی از موارد در عدنده این شرط فکر دیگر یعنی همون قطع موضوعی اینطور میشد بگن که تو ذهن ها تدایی و ما شما هرچی این شروع رو بخونیم حواشی رو بخونیم محاضرات اوتوریه رو بخونیم تمام کتاب های, های خارج رو بخونیم این ابهام میمونه که این تباول بشه من هست چون هر قطعی خریدی هر قطعی سفتیه اگه میشه بگیم ما یه قطعی پیدا کردیم به جزء سفات نفسانی نیست از تقابلی باقعا با نداره بلکه تداخل صد درصد تداخل صد تقابل اصلا در جمال است مگر بگیم در مقام تعلیم و مثل جسم طبیعی و جسم تعلیم خبا این فقرش مراجع کردن این دوتا رو جسم طبیعی با جسم تعلیم چند نفر مراجع کردن؟ ایش که مراجعه نگرد اهمیت نداره وقتی میگن جسم طبیعی با جسم تعلیمی فرق داره خواهید مراجعه کنن آقایی یعنی ما رو مراجعه نباشه که شرف نداره چیزهایی که میشنوید مراجعه کنه حالا در محل بحث ما تقسیم آیا منطقی یا تعلیمیه تعلیمی. به خواهد که تداخل سفت در هر دختی تریده هر دختی صفتی و حقیق بابل این کاره کسی نمیتونه ناره نارش کنه حالا شرا به این نه ترسیم که در کلمات اومده اینا یه سردی داره که سردش در کلمات نیست و این آقای خیلی دفتر یعنی کسی که عمرش نیزاره کن کلاس میاد یه مقدر بیشتر دحمت بچیشه یعنی تکیش هم برابر میشه زحمت زیاد میخواد برا حضم این مطالب که علما در این تفصیل چی میخوان بگن؟ تقسیمات اومده مثالهایی براش زدن در حدود اینی سی سال پی بحث و مباحثه شده همه این ها. ولی صرفش معلوم نیست. یعنی نکته اساسیش مونده ما این ها برای چی کردیم؟ یعنی در مقام تعلیم اومدیم قط رو تقسیم کردیم به قطع طریقی و موضوعی موضوع رو تقسیم کردیم به لوگست اینها صرفش چیه سر صرف تقسیم مونده یه یعنی چیزی که به درد ما میخورد اون معلوم نیستم که همه دارن میگن اون باز میمونه که کجا مهمه بفشون نیست یعنی این نیست که بگیم در چه موارد تحفظ بر واقع خوب اینو خودشون هم دارن میگن در مواضع هر باشه تحفظ بر واقع مهمه اگه صفتی باشه تحفظ بر واقع مهم بیشتر نه بحث ما در علم فلسفی نیست که بگیم علم فلسفی علم جوهریه و هیچ مخالفتی نداره بنابر قاعده فلسفی اتحاد آقل به معبول و عالم به معدوم یک چیزه هیچ تخلق درش نیست. ما قط اصولی داریم بحث می کنیم شاید کلاقی بپره و ما قط پیدا کنیم واقعیت هم نداریم. ما قط اصولی و قط اعتباری یعنی علم عادی. یه داریم بحث نه علم فلسفی و صدرایی. اون محل بحث ما نیست چی میدونه واقعی و چی بوده چطور به ما رسیده ما در قطع اصولی داریم محلی نه در قطع ریاضی و فلسفی و عقلی اون از محل بحث ما نیست بحث ما در قطعی حاصل شده برای شخص وسواس قطع حاصل نمیشه برای شخص قطع قطع حاصل میشه هر دو غیر مطارف. قرآن ماهو شده صورت طبیعی در حاصل میشه رو داریم بحث میکنه معلوم نیست موافق با واقع باشه یا نباشه از سز نیمونه یعنی صفر فنی قرانش این تقسیمات کجا به درد می خوره ما بعد از اینکه قران رو تقسیم کردیم به تاریخی و موضوعی و موضوعی او ما تقسیم کردیم به سفری و کشفی و تاریخی اینو کجا به درد می خوره هیچ مونده یعنی در هیچ کلمه‌ای از کلامات نیست اون خاطر عقیمه این مباحث عقیمه زاد و بده دیگه تکراره همش تکراره و تکرار مقبل و مومنده هرچی بیشتر بخونه بیشتر خسته میشه اینه هرچی بیشتر که بدن ایسان بیشتر خسته میشه ولی سری می داره اینه برای چی ها بردن برای چی اومدن گفتن در سفتی غرض موضوعیه به این به خاطر عدم انسجام به این مبانی اصولی و موانئ فقيه انسجام نداره ما اینا رو برای چی گفتیم ثمره عملی فن نداره منتها نیست اینو آقایان دقت کنن امروز دفعه من تایید کنم خاص وقتی تقسیم میشه به دو قسم تاریخی و موضوعی قسم تاریخی یعنی قسمی که تغییر در واقع و کاوشیات مشاهده نظره اما طوری تعریف شده عقل موضوعی که در لسان عبد الله بعد این موضوعی تقسیم میشه به صفتی و تاریخی علت موضوعی صفاتی علت موضوعی تاریخی در مواردی که موضوعی صفتی گفتن اون صفت نفسانی بودنش ممدوز بود. در مواردی که موضوعی تاریخی واقع ممدوز یعنی اسم به واقع و خود علم جزء موضوعه که واقع هم جز موضوعه هر دو دخلیه اینجوری اومدن گفتن بلی در مواقع که موضوعی صفحی باشه نفس علم به واقع مهمه کاری به واقع و نداره اینجا شبهاتی به ذهن میرسه که در یک مورد علم به واقع مهمه واقع استن مهم نیست چرا مهم نیست؟ بعضی از مواردن علم مهم واقع مهم هم علم دخیله هم واقع هر دو دخیله این به چه معناست؟ است یعنی تفسیر درستی نشده یعنی واقعیت اینه که ما یه تفسیر درست از این ارائه ندادیم که وقتی بیاییم بگیم آقا علم به واقع یا واقع معلوم این درست تفسیر نشده چون شبهه به ذهن میلسه که چرا واقع را ما تردش کنیم چرا فقط علم به واقع مهم باشه واقع هستم مهم نباشه؟ یا چرا علم به واقع یعنی در واقع معلوم علم به واقع جز باشه واقع خودش جزیت داشته باشه چرا بعضی از موارد اینطوره، چرا بعضی از موارد اونطوره. طوره این صرفش معلومی تفسیر درستی هم ازش نشده لذا این نیاز داره به این بحث کنیم در دو تا نوشته. لیکن که وقتی میگن قطع موضوعی صفتیه یعنی علم موضوعیت داره خود علم موضوعیت داره در موادی همچه میگن قطع موضوعی طریقیه هر دو موضوعیت داره هم واقع هم این رو همه میگن. در تمام کتاب ها نمیشتن یعنی قافل از این مطلب است. ولی دو تا نکته میمونه. دو نکته میمونه نکته اول اینه که در مواردی که قط موضوعیه صفتی باشه بنابر تشخیص شما در اون موارد عنوان موضوعیت داره نه این خیلی مهمه عنوان مهمه نه یعنی ظاهر ادالت مهمه نه واقع ادالت زنکار به واقع نذاریم ادالت ظاهری مهمه نه ادالت واقعیئه عنوانش مهمه نه موانعش من علم پیدا کنم به این شخص فقیره انما صدقات اول الفقرا میتونم بهش صدقه لازم نیست تغییر باشه به خاطر اینکه عنوانش مهم یعنی همین اسمش فقیر باشه کافی اسمش فقیر باشه ظاهرش فقیر باشه کافیه و واقع اصلا در کار نیست به خاطر اینکه عنوان موضوعیت داره ولی در مواضی قدر موضوعی تریخیه موضوعی تشکیه، هر دو دخیه هم واقع هم علم علم ما به فرق و در واقع هم شخص فقیر باشه یعنی اگر ما اعتقادی این شخص فقیر صدقه دادیم بعدا کشف خلاف بشه دوباره با ای صدقه بگیم یعنی مجلی نیست اگر اون صدقه صدقهی ماجهبه باشه مجلی نیست باید معلومه تا این قسمتش معلومه شوقه در ایست تمام شوقه در نکته دوباره یعنی همینا رو با خودمون بلدیم دیگه یعنی وقتی بگم عنوان موضوعیت داره یا مؤنمن موضوعیت داره و اینها رو با این اینطوری مرتبط کنیم به قرعه موضوعی صفتی قرعه موضوعی تاریخی همه اینها معلومه و نا ممارستی به دست میاد یا خیلی واقع به این مطالبون خیلی سر نگرد و این مسائل دیگر هم دیگران دیگرانم میگن ولی سرش اینه که اینها رو ما چه تشخیص بدیم و در چه مواردی به یعنی قطع موضوعی صفتی گروزش در فقه به چه استلاحیه قطع موضوعی کشفی گروزش در فقه به چه اصطلاحیه؟ این در فقه ما اسمش عوض شده اسمش در فقه ما عوض شده یعنی چیزی که ما در اصول به یک اسم خونده بودیم در فقه این اسم اون خاطر میگن آقا اینها مثال های فقیه یا نداره یا خیلی کمه نظام مثال براش میگنه نمی بزن ولی اگر کسی مسما رو تشخیص بده و بدون این تا اسم داره یه اسمی در رسول براش گذاشتن گفتن قطع موضوعی سفتی و یک اسمی در فقیه براش گذاشتن و النا مسما همون مسماست ما دیگه صرف مطلب دست پس تا الانش خیلی از مطالب واضحه که در تخصیم میشه به موضوعی صفتی و موضوعی طریقی در مواردی صفتی باشه نفس ملاکه و موضوعیت داره از این کاری به واقع نداریم ولی در مواردی واقع معلوم در کار باشه هر دو دخیه این جزء الموضوعه نه تمام الموضوع در موارد قطع موضوعی صفتی علم تمام موضوعه ولی در مواردی که قطع موضوعی طریقی باشه علم زود علمی خب میاد خیلی تا این حدش مفید نیست اون این مثال هایی که داریم میزنیم ما داریم نگیم این طوریه این نمرکلا در این که ما اینو چه در فرط کنیم و مواردش رو بشناسیم و خیلی تعمل میخواد برای این اینا رو تشکیز بدیم و به خاطر اهمیتش من اینا رو دارم هیچ تکرار می کنم که آقایی از ذهنشون نفره و ذهنشون بمون. این روز گفتیم یکی از اصطلاحات که فوقه ها دارن فوق یکی از اصطلاحات که فقها ها دارن شروط علمیه است شروط زکریه و این سه قسم که این نوشتن آقا این سه قسم قسم اولش میده کنار قسم دوم و ثبوتش احتمال داره تفسیر شرط علمی یکی از این قسم دوم و ثبوتش. ولی تا الان معلوم نیست ما همیشون شنیدیم شرط علمی شرط زفری ولی دیگه نمیدونیم آیا قسم دومه یا قسم ثومه یعنی واقع معلومه یا علم به واقعه در هر دو علم دقیده آیا به نحو تمام الموضوع دقیده یا به نهر جد الموضوع دقیده نمیدونیم هنوز تفسیر درستی از شرط علمی در کار نیست فقط شنیدیم که بعض شروط شروط علمی مثل علم به طهارت لباس مسرگیم شرط علمی شرط علمیه آیا از بسم دومه یا بسم سه هنوز مشخص نیست و احدی از فقها و اصولی نی. در هیچ که از مباحث بهش اشاره نشده به خاطر اون اقلاق میمونه و مطالب برای ما هز نمیشه و اینا تکرار ما که نیست. بگم این بحث خیلی داریم طور میدیم ما اصلا مرس نمیخونیم مرت هنوز واضح نیست یعنی یک ما هم که رو این بحث کنیم این مطن رسائل هنوز واضح است. یعنی ما هنوز اون نتیجه رو نگرفتیم. این تقسیم قطع به موضوعی و طریقی و موضوعی به دو قسم صفتی و کشفی هنوز معلوم نیست کجا هم به درست میخوره ما فقط اسمی رو گذاشتیم و تشقیق کردیم و مثالهایی براش پیدا کردیم ولی واقعه چیه هنوز بهش نرسیدیم از شرط علمی در مقابل شرط واقعی من المحتمل از قسم دوم باشه و من المحتمل از قسم سوم باشه ما الان اینو میخواییم بگیم در این نکته دوم که سر مطلب هم، سفر مطلب که چیزی که در اصول به نام قطع موضوعی صفتی بوده در فرق به نام شرط حدوثی هر چیزی حدوث شرط باشه و علم به حدوثش شرط باشه نه حدوسن و ببان و اون چیزی که در اصول به نام قطع موضوعی طریقی بوده یعنی شرط علمی بودوسن مرقا این تمام صرف این مثلا. یعنی بعضی از شروط علمی هستن که بودوسشون شرطه و با شرطیت نداره بعضی از چیزها هم بودوسن شرطه هم باید ادامه پیدا کنه وقتی میگن علم به واقع یعنی بودوس علم و حصول علم کافیه در توفر این شهر. همین که علم پیدا کنم به اینکه لباس من خوب تفقد کنید به که علم پیدا کنم لباس من نجاست نداره میتونم وارد نماز میشم اگه در اسنای نماز علم به مانعیتش پیدا شد علم به نجاست پیدا بشه نماز من باز درست چرا؟ به خاطر اون چیزی که شبیت داشت علم به حدوث بوده. بقاان دیگه لازم نیست مهم اینه وقتی انسان وارد نماز میشه مکان مسلی قصبی نباشه اگه وارد نماز شدیم با علم به عدم قصدی یه بعدا معلوم شد قصدیه نماز درست چرا؟ چون این شرط حدوسیه بقاان لازم نیست اگر شخصی این پیدا کرد به عدن وجود آب و وقتی و منتقل شد به تیمم تیمم کرد و وارد نماز شد و آب پیدا شد نمازش درست لازم نیست نمازو بشکنه یا واجد به بطلان نماز بشه نماز درسته چرا چون اینها همه شرط حدوسی هم. شرط حدوسیه و شرط حدوسی اثرش اینه که بهان نداره ادامه پیدا نمی در موادی میگن علم به واقع ملاجه و موضوعیت داره نه واقع یعنی شرط حدوثی اصلا واقع در کار نیست علم به واقع یعنی شرط حدوثیه ببین یک چیزی رو اصولی یه اسم براش کذاشتن فقهای فحول مثل ساعت جواهر یه اسم دیگه روش گذاشتن بعد توفیقی یعنی هم بین این دوتا تا الان حاصل نشد یعنی کسی اون بحثو مرتبط به این بحث نکرده اون خواهد مباعث قطف و کسی به خونه میشه و خیلی میگن میگه این های کلامی چرا کلامی باشه؟ پس ما دو پرس کنیم همه چیزی برداره بده به متکلمی بقاها چی کار کنم پس مباعث اصیل اصولیه از مهمترین مباعث اصولیه چیزی که در اصول به معنای قطع موضوعی صفتی بوده در فقصر از شرط حدوسی در آن یعنی این همونه شرط حدوسی رو میگن قطع موضوعی صفتی یعنی خصوص علم حدوسی من قبل از ورود به نماز علم به وجود شرط علم به عدم ما اگه بعدا در اصناع نماز کشف و خلاف بشه اشکال ندار به خاطر شرط شرط حدوثیه به خلاف مواردی که قطع موضوعی طریقی باشه در که قطع موضوعیه و کشفیه در این موارد علم و قسم ها جزء الموضوع واقع در کاره یعنی چیزی که شرطیت داره هم حدوثا هم بگاه اگر من علم پیدا کردم به تهارت حدثی و وارد نماز شدم در اصنایش فهمیدم وزو ندارم نماز باز چون بقا نداره اینو میگن قطعی که جز علم واقعا درش دخیه از دخالت واقع در علم خیق معنای بقاع شرط آیا این شرط حدوثا شرطه یا حدوثا و بقاعن از مسائل حامه علم خیقه خیلی اهمیت داره مبتنی بر مبحث تقسیم قطع موضوعی به دو قسم صفتی و کشم یعنی شده فرمید در علم برکات اگر کسی بگه از قسم دومه اگر کسی بگه از قسم دومه یعنی واقع مردم در این موارد شرط بقایی یعنی علم باید ادامه پیدا کنه. اگه شما شک بکنی، به درک نمیخوره. ولی اگه سومی باشه، سومی باشه، علم به واقع باشه، موضوعی صفتی باشه، این صفت حیث نشه، حدوسی بوده، ادامه پیدا می‌کنه. فرق نداره شما هر مثالی رو ترتیب میاد، اون وقتی گفتین. نه برعکس گفتنش و خاطر یه اون تفخیمی که دیروز روز گفته بودیم دومی واقع معلوم بود علمه به واقع بود الان این بحثی که الان بحثو کردین اولی الیبه واقع بود به خاطر اونه به الا مثال رو اصولی این در حاشیه مثال حفظ رو اومدن برای هر دو یه شما اون که فقها خودشون داره فقها خودشون اختلافی داره در این حفظ الکهات از کدوم قسمه آیا حفظ از موضوعی صفتیه یا موضوعی طریقهیه کدومش یه مقدار شدوقیه ولی که خب اینا رو از روایات تحصیل کردن یک روایت داریم که از امام علیه السلام پرسیدن که شخصی نمیدونه چند وقت خونده در اول دو بوم امام فرموده یو باید عادت. بعد سه چهار تا روایت دیگه داریم که امام صاحبش شنید که میگه تربی کن را کنه بلکه به یک طرف علم این پیجا بعد علما اون سه چهار روایت رو برای یک روایت مقدم کردن و خاطر به لزوم تحرزی و تربی یه مقدر تعمل کنه اگه ذهنش به یک طرف رفت اون طرف بگیر. اختلاف در اینها هست اختلاف هم اختلاف روایات و روایات ظاهرشون فرق داره باطنشون فرق داده سنتهاشون فرق داده آزا ما میخوایم فواعد اصولی خودمونو بخونیم مهم نیست که حالا در هفت از من چی میخواییم بزن. در رکعت اول و دوم دو یه مطلبی در احکام فقهی بگم در مطلب در رکت اول و دوم دو رکعات واقعی هستند واقعی یعنی مطابق میشه به واقع معلوم رکعات واقعی ولی در رکعت سوم و چهارم اعنه از ذکعتین 3 و و 4 و و بنایی بنا رو بذاریم باقی شاید در واقع شار نباشه بنا رو بذاریم بسید شاید در واقع سه نباشه پس ذکعت 3 و 4 اعنه مست از اینکه واقعی باشه یا بنایی باشه ولی ذکعت اول و دوم خصوصاً باید واقعی باشه و بنایی نباشه بزا مجرد شکل در رکعت این اولایه مختل نماز ترابی هم لازم نیست و روایت که گفته مجرد حصولش نماز رو به هم میزنه مقدم میشه به روایاتی که بخلاق شد. حالا در فیم شب من در جواهر داشتم بگام کردم نظرم همینه که به مجرد حدود شکل در رکعت به هم نیست حالا شما خودتون مراجع کنید شاید نظرت دیگه پیدا. مهمه که ما این دو تا مطلب رو یعنی یک مطلب اصولی رو با یک مطلب سی به دیگه مرتبط کنیم. چیزی که در اصول خوندیم معلووم باشه در چه مواردی از ص به درمون. اون چیزی که قدر موضوعی صفتیه در ضب اسم شرط حدووسسی با اون چیزی که، قطع موضوعی تاریخی در فقهش میگند شرط مطلق یعنی حدوسی و مبالا لذا معنا پیدا میکنه این جمله اعلام که قائل شدن در قطع موضوعی صحیحی واقع در کار نیست ولی در تاریخیش واقع در کار و ال جزء الموضوعه این واقع در کار باشه و موضوعیت داشته باشه به معنای استمرار اون شرطه شرط آیا حدوثی فقط یا حدوثی و بقاییه حال رو در تمام این موارد وقتی ما تشخیص دادیم این بحث اصولی به چه بحث از فقه مرتبطه به اسمش در فقه اون موقع که به روایات که مراجع کنید تارتن کسی نتیجه میگه این شرط حدوثی باشه تارتن نتیجی میگه که حدوثی و بقایی باشه مثلا در رابطه با قصفیت مکنه در رابطه با قصبیت مکان ما ملاک رو چی بدونیم صفها چیز نداره یعن مطالبش از ویروس فیروز مونده علم در رابطه با اینکه ما مثلا یکی رو میخایم تشخیص بدیم غصب مانعیت داره مانعیت وضوسیه یا بغاییه وضو نمی‌شه یعنی اگر قبل از نماز این پیدا کردن به عدم قضیت و وارد نماز شدم این کشفه که قضیت در این موارد نماز باطلی یا باطل نیست یعنی این شرط وضوسی یا بغاییه این برگشتش به تعریف غصب غصب چه معنا کنید مبنای شما در فقه دو تا مبنا در رابطه با مانعیت قصد هست خوب دقت کنید. اونایی که عمرتون تو این کلاس طلب می‌کنی، دقت کنید. مانعیت قصد مستند به چیه؟ نظر شما چیه؟ نظر های خویی و ناحی و دیگران اصلا نداری. نظر شما چیه؟ مانعیت قصد برای نماز و سایر عبادات آیا مستند به حرمتی تسرف در مال مستند به حرمت تصرف در مال دیگر یعنی چون تصرف در مال دیگر حرام بوده ایه یا مستند به حرمت تصرف در مال غیری مستند به کو تصرف در مال غیری خودمشه اختلاف الاعلام بی زالک علا قوه به خاطری میخوام من تشکیز بدم یک مورد رو این مانعی یا یا بقایی میخوام تشکیز بدم خیلی مهمه یعنی سر مفتاحه چیزی که انسان اگه یاد بگیره اعلم علمان میشه سر مطالب همینه و الا ترجمه و شرح و هاشیه نسبت به درسایل الان مکفی نیستن اینا مطالب میمونه ناپخته عت ای این گوش های ناپخته که مردم میخورن همه مریضن ولی عکشم چرا مریضن یعنی هر کسی مجرزی گرفته و کالاسز و سوییس و از گوشت حیوانات گوش ها رو آرانگوش و استح نشده و کمار و امثال ها رو بیان می کاواسه میکنن؟ مردم میخوان و چرا مریضه چرا سرگیجه داره؟ چرا سر داره؟ چرا اینقدر مریضیا یاد شده؟ چرا مردم بی حالن؟ تحصیل داره در این موارد اگه مطالب پخته نشه انسان مریض میشه مریضیش از چهر پنجا سال طول میکشه. و ادنا مریضی که بر انسان حاصل میشه جهل. یعنی جهلی که تا آخر میمونه با انسان اینا رو باید حضمش کنی والا خییلا خوشایندشو نیست میگم مثلا تو این کلاس متن خونده نمیشه متن میخوای هزار تا کلاس در سایه هست آقا این برم متن بخونم ولی عمر نباید تلف بشه متنم ما داریم ما داریم متنو میخونیم دیگه شیخ انصاری چیزی گفته که آشتیانه میگه منم نمیفهمم چی یعنی در کلاس در که شیخ انصاری دو سه دوره نشسته بعضی از موارد نشه من نمیفهمم استاد منظورش چیه والا ما مثلا بفهمیم یا دیگران هم همینطور مقصود شیخو رو نمیدونن به خاطر شیخ فقیه برای خودش این فقهش منتقل نشده عدم انتقال علم, علم علما به ماها که چرا علم اینها به ماها منتقل نمیشه چرا ماه درس مرحوم های طبیزی رفتیم و از اینشون چیزی به ما منتقل نشد این مبنائیه تنکاری به بیرون نداره مبنایی که علم جزء کیف فاعلیه یا عرض فعله عرضی انفعال یا عرض اضافه است کدوم یک از این ارازه اختلاف اول اعلام از فخر راضی به ابن سینا گرفته تا ملاصدر را تا معاصرین اختلاف در این که علم کدومشه اختلافشون در این که کیف نفسانیه یا اضافه است یا فعل یا انفعال امثال ولی قول اقوائی که علم مثلا عرض میشه علم جوهره اگر بخواد عرض باشه منتقل نمیشه و چون علما قاعدن نهی که علم عرزه منتقل نمیشه ولی اگر کسی قاعد شده که علم جوهره حرکت جوهری در اشراح پیدا میکنه و علم منتقل میشه به دیگری میخوان علوم شیخ به ما منتقل بشه واقعا کتابش نیاز به هر داره حالا بعضی از موارد میبینید ده صفه یک مطلب هم نداره ولی این مواهشش الان ناپخته. است ما قطعه موضوعی رو هنوز تشخیص نداره برای تشخیصش که موضوعی صفتی با طریقه فرقشیه در چه مواهده به درد میخوریم یک مثال میخواییم نزن چند تا مثال نرشتم یه مثالش الان وقت هست بگم یه مثالش اینه که مانیت قصد رو شما یه میخوای آیا مانع حدوسی بدونی یا مانع حدوسی و بقایی بدونی یعنی از موارد بحث موضوعی صفتی میخوای حساب کنی یا میخوای از موارد بحث موضوعی طریقه بدونی میشه؟ ملاک میخواد ملاک میخواد معیار میخواد, میخواد, میخواد درس بدون معیار و ملاک مفید نیست یعنی انسان پیش نمیره باید معیارش من بدونم با اون معیار میتونم تشخیص بدم معیارش اینه که مانعیت قصد که مسلمه اندل فقهاست مستند به یکی از این دو چیز مانعیت نفس یا مستند به حرمت تصرف در مال غیره یا مستند به قوه تصرف در مال غیره اگر قائل بشیم به که مانعیت قصد مستند به حرمت تصرف در مال غیره بنابر این مانعیتیش حدوسی چرا؟ به خاطر قبل از نماز من علم به تصرف در معلقه نداشتم، حرمت تکیبی نبود مانعیتیم در کار نیست نبود ولی اگر مستنده به قبع تصرف در او به قبع تصرف در معلقه یک امر واقعیه قبلا هم قبیه بوده الان هم قبیهه به خاطر از احکام عقلی و قلایی از احکام شهر نیست که تندجزش مشروط به باشه قب تصرف در مالقه قبل از نمازم بوده داخل نمازم هست همیشه هست اختصاص به یک حالتی دونه حالتی نزده قب تصرف در مالقه یا از احکام عقلائیه یا از احکام عقلی خلاف هر کدومش باشه اختصاص به قبل از نماز بعد از نماز نده اگر مانعیت قصد به خاطر قب باشه قب ذاتی قب ذاتی قبلشم موده الانم به اون خاطر میگن با طرف احتمال میدیم راضی باشه احتمال میدی راضی باشه بنابراین که مانعیت مستند به حرمت باشه اگه راضی باشه حرمت نداره ولی اگه راضی باشه قب هم نداره این اول کلام به هستاتیه وقتی قب ذاتی باشه قبلش هم بوده بعدش هم از پس اگر کسی از نظر فقهی مبناش این باشه در روایات مانعیت قص نگاه بکنه بگه مانعیت قص مستند به حرمت بوده نه به قب اگه به حرمت باشه مانعیت بودیسی قبل از نماز نبود بعد از نماز هم اشکار نداره و نماز درسته ولی اگر مانعیت قد مستند به قوه تصرف در مال غیر باشه در این موارد مانعیتش مطلق بودوسی و بقای از موارد قطع موضوعی تریفی حساب میشه این یک مثال سه مثال دیگه هم نوشتم وقت نیست اینا رو حتماً باید برای آقای بگیم ولی برای تحقیق برای تحقیق یک مسئله رو شما مراجعه و اون مثال مثال متدابد و مبتلابه فجر در لیالی مقمر در شبهایی که محتابی نیست یا محتابی هست اختلف الاعلام در اینکه ما نماز رو که بخونیم نماز رو سر همون فجر سادر مستلح بخونیم یا تأخیر بندازیم بحث از تأخیر صلات در لیالی مغمره ما فجر تیسر اختلاف العلماء فی ذلک مشهور میگن قائل به تأخیر نیستن ولی صاحب جواهر تشمر بن ها و امام قائل به تأخیر یا به ذهن فتوا یا به ذهن برگشتش همین است اگر شما بنا به فتوای خودتون برسید این فتوا مبتنی بر خصوص هنده است یعنی مستند به هیچ روایتی نیست که بگیم ما اون روایات رو باید ببینیم بعداً در خود اون خودمون پی این اینا ليش این فتوآ مختص برای همین بحث است تحقیق کنید تا شب این بنظر می‌رسید یا نمی‌رسید ارتباطش اینه که این تبیین در آیه تبیح حتی یا تبیین علیکم الخلث من الخیل الازبل این تبیین یعنی یعنی فن وقت موضوعی مم. یا تریهی از موضوعی باشه کتوم میشه. یا دینام موضوعی موضوعی باشه موضوعی صفتیه یا موضوعی تریهی و کشفیه میشه <تصفح> اگر کسی آقا این همه دیگه تحقیق میشه <تصفح> <تصفح> دا... را... نه ببینیم دو تا قول درش هست. او دیگه راه تحقیق بسته میشه. بذار خود تالبین اشتباه میکنه در استنباط یا اشتباه نمیکنه. بعدم بیان بگن راه بسته میشه دیگه. مطلب و انسان تا آخرش رو بده، اون بست میشه. این تالبین هیچ نمیتونه فکر کنه. بذار فکر کنه یه اشتباهی برایشون پیش بیاد. اشتباه مقدمه حضور الهی میشه. دو تا فقطا براش هست که متراسه برای خلاصه شده نیاوام این وقت بذارن اگر کسی معتقده به این که وقتش مهمه وقت بذاره اینا رو خوب بخونه تا معلوم باشه که رسایله چیه بعدن بشه درست پسن بکنه ها بعد اینکه اینا وقتی که جاوه است خاستم شب شب آقای پنجبر رو بپرسم یه مشکلی هست صدوردونه شده مثلا از اما چه آقای خلیل مراجعه یه راه هست چرایی شوی بر ها برشوی شرایی یعنی هایی تنگه بازید که جامعه جامعه و روونه دوان آبه دوان دوان